طبی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام هست میانجا که نیار از ندیم چاچ چا خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم تا مگر جرع فشاند لب جانان بر من سالها شد که منم بردر میخانه مقیم مگرش خدمت دیوین من از یاد برفت ای نشیمه صحری یاد دهش عهد قدیم بعد صد سال اگر بر سر خاتم گذری سر بر آورد گلم رقص کنان از مرمی دلبر از ما به صد امید ستد اول دل ظاهرا عهد فراموش نکند خلق کریم اون چه گوتنگ دل از کار فرو بست ما که از دم صوف مدد یابی و انفاس نسیم فکر بهبود خودی دل زدری دیگر کن درد آشق نشود به به مدابای حکیم گوهر معرفت آموز که با خود ببری که نصیب دگران از نصاب زرسیم دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورن آدم نبرد سرفز شیطان رجیم دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورن آدم نبرد سرفز شیطان رجیم حافظ عرصی مزرت نیست چه شد شاکر باش چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم